سفری به دنیای انسان شناسی سلام به همه شما شنوندگان عزیز به اپیزود صفر پادکست ما خیلی خوش آمدیم من مبینا مسافر شده هستم و قراره در این سفر صوتی همراه شما باشم حتما الان براتون سؤال پیش اومده که این پادکست قرار درباره چی باشه و چرا باید وقتتون رو به شنیدن اون اختصاص بدیم خب اجازه بدین همین اول کار بهتون بگم که ما اینجا جمع شدیم تا با هم به دنیای شگفتانگیز انسان و هر چیزی که به اون مربوط میشه سری بزنیم. اسم پادکست ما سرنای انسانشناسیه و توی فصل اول قرار امیق بشیم توی نظریات انسانشناسی. میدونیم شاید این کلمه برای بعضیا یکم کم سنگین به نظر برسه. ولی ما قول میدیم که با زبون ساده و جذاب پیچیده ترین ایده ها رو هم با هم بررسی کنیم. از فرهنگ ها و جوامع مختلف گرفته تا تکامل انسان و رفتارهای اجتماعی. همه و همه قرار زیر زره بین ما قرار بگیره. این پادکست حاصل تلاش یه تیم کوچیک و پر از انگیزه است. تا یادم نرفته اینو هم اضافه کنم که ما هممون اون دانشجوهای انسان شناسی دانشگاه یزد هستیم. خب، بریم سراغ معرفی تیم پادکستمون تا شما هم باهاشون بیشتر آشنا بشین. ایده اصلی این پادکست و کسی که نویسندگی این سفر رو به عهده داره آقای متین پارساییان هستن. در بخش نویسندگی، آقای پویا سلمانپور هم به کمک میکنن و همراه ما خواهند بود. متین و پویا ذهنایی خلاق و پر از سوالی دارن و مطمئنم که ایده های جذابی رو برامون آماده کردن. کسی که با هنرش به پادکست ما جلوی بسری بخشیده و تراحی پوستر و کاورای جذاب را انجام میده خانم خانوم احمدی آذر هنرمند خوش سلیقه ما هستند. و در بخش مدیریت پیج و صفحه مادرکاست باکس با نام سرنای انسانشناسی خانم محتا باخشاهی عزیز و همراه موبینا شاطرزاده به عنوان دستیار رسانه‌های اجتماعی حضور دارند و در این بخش بهمون به کمک میکنند محتا و مبینا به همه جا هست تا شما عزیزان بتونین به راحتی به پادکست ما دسترسی داشته باشین و با ما در ارتباط باشین خب، همینطور که گفتم، فصل اول پادکست ما قرار اختصاص پیدا کنه به نظریات انسان شناسی. شاید بپرسین چرا انسان شناسی؟ به نظر ما انسان شناسی دریچه یه روبه شناخت خودمون و دنیای اطرافمون. با بررسی جوامع مختلف، آداب و رسوم، باورها و ارزش‌ها میتونیم دید عمیقی نسبت به تنوع بی انسان‌ها انسانها پیدا کنیم. شاید حتی جواب خیلی از سوالات اساسی زندگیمون رو هم پیدا کنیم. توی فصل اول ما قصد داریم به سراغ مباحث کلیدی در انسان شناسی بریم. از نظریات کلاسیک مثل کارکردگرایی و ساختارگرایی گرفته تا دیدگاه های معاصر و بحث و داغ این حوضه. ما سعی می کنیم این نظریات رو با مثال های ملموس و داستان جذاب براتون روایت کنیم. تا هم لذت ببرین و هم نگاه متفاوتی به انسان و جوامع پیدا کنی. این اپیزود صفر فقط یه سلام و یه معرفی کوتاه بود. از اپیزودای بعدی رسما سفرمون رو در دنیای انسان شناسی آغاز می کنیم. ما خیلی خوشحال میشیم که شما هم در این مسیر با ما همراه بشین. برای اینکه اپیزودهای بعدی ما را از دست ندین، حتما ما رو در کست باکس دنبال کنین و به صفحه سرنای شناسی ما هم سری بزنین. اونجا میتونین نظراتتون رو هم با ما به اشتراک بذارین و با بقیه شنوندگان هم تعامل داشته باشین. از اینکه وقتتون رو به شنیدن این اپیزود اختصاص دادین از شما بینهایت ممنونی. منتظر اپیزودای بعدی ما باشین. اما تا اون موقع خدا نگهدار.